رفیق بعد کارگردان عباس احمدی مطلق بازیگران حمید جبلی خانم تو این خونه همه چی نازنین تر ازونه ایرج طهماسب ببین Everybody بودن خوب همار روستا یه نفر به سراغ عزیز درستنگی اومد جالگ سامتی بگم همیدون عینه بگیری میرم پیش آبجیم آبرون نره ببرم ریما رامین فر با این سر و ریخ بری تو هموم نازنین من موسیقی علی رزا کوهندیری تهیه کنندگان مجرید مدرسی حمید مدرسی منظره هواپیما از نمای دور شهر تهران رو میبینیم هواپیما در آسمان برگردنی. هواپیما مسافر ما رو از خارج به مقصد تهران میرسونه و کم کم برای فرود اومدن پایین تاکسی از پیچ خیابون میگذاره صدای گویندگی رادیوی تاکسی داخل تاکسی از پشت شیشه پنجره عقب ماشین مردی میانسانه میبینیم که قیافه بامز و خندداری داره و مهاشت روگندومیه اون که مسافر خارج ما بوده با تعجب به اطراف نگاه میکنه تاکسی کنار هوتر بزرگ نگه خوند. داخل اتاق گوشی جنجالی داره اتاق هتل. چمدون بری هتل، چمدون حبیبو کنار تخت حبیب به میره مرد می حبیب هواپیما و چند ورق دیگر رو, رو روی تخت پرت میکنه. پروتوی بلند مشکیشو در میارو خسته و کفته روی تخت میشینه شاد رو باز میکنه اونم روی تخت میکنه حبیب داره تلفنی به دخترش حرف میزنه الو الو آزی دادی جان سلام آره رسیدن نه بابا کچه کاری نداره نه هیچ خودی خبری نبا نه. نه هنوز ندیدمش که. میرم میبینمش. آره. دوستش دوستشونو از اون حمدونی که درش بورزه، بعد رو نگاه نه خیلی عوض شده. خیلی پل درست کردن. خیابونا گنده شده. خیلی آره. خالد راست میگه. ببین؟ همه بودم؟ خوب؟ خیلی حالا من هم بهت می میزنم دیگه آره قربونت برم خدا حافظ. روز خیابان حبیب راننده شخصی گرفته راننده میگه؟ آبا ببخشید میخواستم این سوالی ازتون بخورم چرا اون آل رو نخریدی؟ آل بالو گلاسش فرق نمیکرد خواستیم این چیزی زیر پامون باشه جسارته برای بیزینس ستشفا بردی؟ نه مادم رفیق ببینم لبخندی از سر شوق میزنه محبت هی بیمارستان اصاب و روان و نمای سخته منش. چند بیمار با لباسه سفی در اطراف پروهنده هستن موشین میزده حبیب میشه و به طرف بیمارستان میره داخل بیمارستان حبیب به طرف استیشن پرستوری میره مطلبی رو از پرستور میپرسه و پرستور میره ولی ما مرد کچل بیماری روی کاناپه نشسته و مترکا به دست به حبیب میخنده حبیب با سر بهش ارزادب میکنه مرد عصبی بلند میشه و دستشو جوری حرکت میده که یعنی برو بیریم بابا و میره حبیب بیتوجه پرتش پنتشو در میاره خسته روی کاناپه میشینه راه رو, رو نگاه میکنه مردی روی جر سرشو کچ کرده و میخارونه پیر مردی رو نمکت خوابیده و تایی راه رو مردی زان اتاق روان پزشک روان پزشک با سر خودکارش بازی میکنه و میگه چه عجب بلاخره یه نفر به سراغ عزیزه در سنگی اومد از بستگاه بستگانشونی... نه من رفیقشم رفیقش, رفیقش. آخرین بار که دیدینش که بوده چند ساله میشه خب چرا این همه مدت نیمتید سراغش نشد نشد حالا چی شده که حالا اومدی سراغش آه تازه رسیدم ایران نبودم حالا میخوام ببینمش حالا فکر نمی کنید کمی دیر شده باشه متاسفم امکانش نیست ریچی؟ چی؟ ایشون جاز بیماران خاص ما هستند. وقتی که تو زندان بودن اقدام به خودکشی کردند. ایشون نه با کسی حرف میزنه نه دوست داره کسی رو ببینه چرا؟ اون یک نوع بیماریه مریض برزن از یک شکر آتفی و هیجانی خودش رو گم میکنه بس چون هچرای حل پیدا نمیکنه با خودش درگیر میشه بعد درست روی یک نقطه گیر میکنه برای حل اون شروع میکنه به یه صورت بله و چون هیچ راهی پیدا نمیکنه همه ذهنش میشه دیوار. دور تا دورش دیوارهای بلند میشه دیوارهای بلند سکوت. سکوت محض و اگر بخوایی شما بهش نزدیک بشید یا ازش سوالی بکنید ناگهان مثل مثل یه بوم منفجر میشه نتیجهش میدونی چی نه شنیدید میگن دقیق کرد و مرد منو ببینه حالش خوب میشه حرف میزنه آقای عزیز اون حتی برای نیازهای اولیش مثل خوردن و خوابیدن با کسی حرف نمیزنه بفرمایید اجازه بدین اون منو ببینه حرف میزنه من مطمئنم از کجا اینقدر مطمئنید خانم ما هم بچگی با هم بزرگ شدیم، زندگی زندگیه کردیم سال‌ها، مثل دو تا برادر به ما میگفتن دو قلوب نمیدونم شاید هم چون از هم جدا شدیم اینجوری این شده خب موضوع دیگه پیچیده ترم شد اونتر که شما میگید ممکنون دوچار شکم بشه اونتر از صفم نمیتونم اجازه بدم ببینینش خواهش میکنم خانم دکتر من از اون سر دنیا به عشق دیدن عزیز در سنگی اومدم اینجا من, من میخوام ببرم اصلا از اینجا چقدر هزینه خرجش میشه این درمون بشه اگر آدم با پول میتونست مالجه کنه که نسته بیبارامون صالب میشدن خانم خواهش میکنم من فقط میخوام خانش خوب بشه همین فقط یک راه هست چه شرط داره چه شرطی؟ فقط اون چیزی که من میگم شما انجام میدید روانپزشک پزشک در اتاق بزرگی رو باز میکنه در باز میمونه. صندلی رو از کنار میز برمیدار و اون گوشه رو به دیوار میذاره حبیب از پشت شیشه در دیگهی تو رو نگاه میکنه روان پزشک به سمت در میرون میگه بیارش مردی به نام منصوری عزیز دوست حبیبو میاره شُلشود را میره و سرش رو هيكج و کوله میکنه. منصوری می عزیز رو روی صندلی رو به دیوار میشوندونه. حبیب کنجکاوانه نگاه میکنه. روانپزشک آهسته با بیمار حرف میزنه ولی اون دیوار رو نگاه میکنه. روانپزشک به سمت حبیب میاد. شما؟ خوشبختانه هیچ رفلکس عصبی نشون نداد حالا شما باید همینجا منتظر بمونید تا اون شما رو ببیند هبون پزشک به شیشه نیزنه و به منصوری اشانه میکنه یعنی بیارش خوش برید منصوری عزیزو بلند کنی در حالی که زیر گرفته به طرف اونا میبره عزیز خون و باوزه با سر کج گوشه سخت سخف اتاق نگاه میکنه می نیستن سبخونی تا شما رو خوب ببینه براش آروم دست نکن بدید. عزیز با چشمای بیحالت مات با دهن باز خیره به سقف. یهو دست حبیب رو میبینی که از بالای شیشه همینطور آروم آروم پایین میاد به صورتش میرسه یه آن چشمشو درشت میکنه اون میشناسه اما باز خیره میشه به سقف. حبیب جوری نگاش میکنه که یعنی شناختی عزیز بیتوجه با انگوش کچکش گوششو میخارونه و تونتون تکم میده منصوری دستشو میگیره و اونو میبره عزیز از روی سندلی بلند میشه روبوش سفیدشو صاف میکنه و باز میشینه حبیب قمنوک به اون نگاه میکنه. عزیز با سر انگشتاش موهای بغل گوشش رو آروم جرق میزنه. مثلا داره موهاش رو صاف میکنه. یان بر می گرده حبیب رو میبینه اما دوباره سرش رو رو به دیوار میگیره. چی شو چرا شما رو شناخت؟ از حرکت دستش معلومه. اگر به هر دلیلی به این طرف برگرده شما میتونید برید تو. چربا نمیگرده. خب شما باید صبر کنید. ببینید اگر برگشت به این طرف شما آروم بمونید وقتی هم که رفتیم تو شما فقط با من حرف میزنید. انگار اون وجود نداره. هم. اگر لازم شد بهتون میگم که باش حرف بزنید. یعنی حالش انقدر قبده. بله. بعضی وقت‌ها لازم میشه دست و پاشم ببندید. گروفی بفرقید اینجا قسمت مهمون نوازی ماست بفرماید بشیرید میخوام می با خیلی خصوصی حرف بزنم خوشحالم که بعد از سال‌ها اومدی دوستتون رو ببینید گفتید اسم دوستتون چی بود؟ عزیز عزیز آقا خب از که ایمیش خیلی ساله خب اولین بار که دیدینش کی بود بچهگی دیگه بچه بودیم و هم بازی میکردیم تو مهر باد باده که هوا میکردیم یه خوششانسی بود که حرف نداشت باد باده که همه کله میکرد گیر میکرد تو درخت. مال این خاله آسما میرفت خیلی خوششانس بود خب خب بعدش عزیز بعد از حم دبیرستان و دیگه سربازی و تا زد و دو تا دختر خوب تو محل بودن استباس کردیم به گوه خند و تو گدر و اینجوری و خیلی خیلی بعدم همکار شدیم همکار شدیم تا باز روز آخر بود داشتیم حچملو می‌کردیم 20 سال قبل بانک مرکزی داخل بانک از نمای بالا عزیزو میبینیم که شنگول و با یه جبه شیرینی از پله های داخل بانک بالا میاد به همکارا شیرینی تارف میکنه شیرینی حالا برم نمیدونه بگه تصوییت <تصفيق> میگم یا بگه مبارک سلام علیکم فریسی مستره فریسی کنم درستشم اتاق رئیس سلام عرض کردم قربان شیرنی بازنشستگی آوردم خدمتتون عایش میکنم آید در سنگی از موقع وقت گرفتین رئیس بانک ما در اتاقش به روی کارمنداش بازه ببخشیدا از خوش اخلاقی خودتونه بفرمین قربان دست شما درد نکنه خواهش میکنم این نامه بازنشستگی ما هم گفتن اومده تو کارتابل شما اگه لطف بفرمایید مال حبیب رؤفی هم هست ما نیست یه روز با هم استخدام شدیم غربان امروز هم دو دوتایی داریم بازنشسته میشیم امیده خدا مبارک باشه سلامت باشیم تشکر کن این تاریخ عدد دو یا سه کدوم میفرمیم این که خب معلومه غربان دندونه داره دیگه خب سه است دیگه دندونه بله به چه دومه درسته امروز چندومه امروز بیست و دومه هفت روز دیگه حقا میگیریم پس یه روز کم د با روز واز شماست یعنی به خاطر یه دندونه ما امروزن باید بریم سر کار دستگاه پول شمار هزلیارو میشموره مردی در بزرگ آهنی خزانه پولو میچرخونه مرد در کشوی خزانه رو باز میکنه یه عالمه بسته‌ای پول رو میزه سه تا کارمند اونارو میشمرد. مرد در خزانه رو باز میکنه و داخل میشه دستایی مردی چرخه چرخ دستی آهنی رو که پر از پوله به طرف ما بیاره کارمندا پولا رو دستبندی میکنن شما باز که برگشتی عزی خیلی hey, امروز ها فردا میکنن نمیدن این حکم بازنشستگی ما رو که من که خدمتم تموم بشه یه روز هم نیستا به جور تو منم نمیخوام بایسن ببین بعد این همه سال حالا برای گرفتن بازنشستگی که باید داریم کنیم به جون تو از هرچی پول بعد میاد یه قمچی چی پول. من چی بگم که تو معدن پولم و لنگ قسط بود. بروش ناست این حبیب بابا اون بی خیال اگه بهش بگن در ساله دیگه هم کار کن باز وای میسه کار میکنه این خیالش نیم داره بانک حبیب با لباس فور بو قدم زنان به طرف همکارش میاد و خوشوبش میکنه و میگذاری زامنه کن همبری داری؟ <سطور> عزیزون راننده که اسمش اسماعیله به اون میرسن و کیسه های داخل ماشین پول رسانی میذارن حرکت میکنه. زحمت چیه؟ بابا نکن زشته. من در قم سوار شو، سوار شو بریم. حالا انقدر اخطار نکن دیگه. روز آخره بگو من خند خوش باش از خونه با زن این سی این سال عین یه هم زدن گذشت اگر تا روز اول اومدی گفتی بریم باکس استخدام شیم آشنا داره گفتی میریم تو دریا پول شنا می کنیم فکر نمی‌کردم هر کی بره بانک کار کنه کیسه کیسه بهش پول میدن نگو فول هست ولی تو باید صبح به صبح ببری بدی به صاحبش این آقا اسماعیل تازه خدمته تو تراوری شده شما صدات خوشه از من خواهش یاد واسطه بشم شما اون همیشه یه رو بخونی. ای بابا بخون جون حبیب بخون جون محگول بخون دیگه چب تو محگابه حبیبم رو میخوام حبیبم اگر خواب عزیزم رو میخواب خوابست و به دارش کنی دست و حوشیارش کنی گویی او یار جونی اومده حبیب با بی حرف میزنه از به نعت پر امشب شبم تابه عبیب رو میخوام سلیمانی جون اگر خواب عزیز نه بابا حواسمون هست ما غلام میرو نه راه خلوت بود سلی رسید فقط بگو ما رسیدیم نامه شوه مأمور بفرسان دمه در علی سانگی تلفن کی میلی الان میفرزام خدمتون جان جام لطفاً ماشین اومده هشی برین امرائشی کنار بانک نگه میداره عزیز و حبیب پیاده میشد عزیز با دستی کلیدش در عقب ماشینو رو باز میکنه حبیب با جسه اون اطراف نگهبانی میده اه صدایی میشنوه یه سری و سری بخش مدرسه از پلای بانک پایین میاد. خیلیش راحت میش و لبخند میزنه. عزیز کیسه پول دستش رو با حبیب از پلای بانک بالا پشت سر ما میفته. سلام سلام بیرون بانک حبیب میخواد به طرف ماشین پول رسانی بره که همون زنه مشکوک صداش میکنه آقا آقا ببخشید. سلام عرض کردم سلام علیکم خسته نباشی سلام خسته نباشید. داری چی داری برامون؟ مرغه رو برات نگفتم. خروسه گفت بابا چقد تو هی تخم می‌کنی هی. به شیشه پنجرهی بانک. سربازی از توی تی بانک به طرف خیابون میره. سارقین دو نفر موتور سواره سربازان از داخل بانک به سارقین شلیک میکنند عزیز از پشت شیشه نگاه میکنه پترول قرمز رنگ سارقین حرکت میکنه مردی از پشت ماشین تون تون شلیک میکنه بیمارستان اسمایلو در حالی که روی برانکارد نشسته و پای زخمیشو گرفت و ناله میکنه میبرد پشتش حبیب بیهوش روی برانکارد افتادی اونم میبرد عینکی و قیافی جدی داره با سر نگهبان بانک مرکزی سلیمانی به اتفاق یه مردی دی که از پله ها میان پایین و به طرف نمیدونم چی شده اون موقع که من تو شوه بوده صد دفعه به شما گفتم در این کار حواستتون رو جمع کنیم مسخره بازی هم در ارید بیستین میگش اووض میخونی به خدا اون موقع من تو بانک بودم چقدر بوده همش یه دقیقه میگم پول ها چقدر بوده؟ یا اولفرد کجا میری طولا چقدر بوده چیستای عرضی بود درسته بیوش شده بله دکتر میگفتن دربه دادن به پشت سرش فکر نمی کنم شکسته باشه ولی بتر یک عکس ازش مندازیم دکتر ماهبی زود باشیم بیان بیرون یه نفر سکته کرده دکتر به عزیز که بیوش افتادی شک میده عزیز به طور خنده داری کل بدنشو میلرزونه یکی یکی توسی جلوه در نگه میداره زن حلیب، ناهیم زن عزیز فرح به حتی بده بچه از بله بهشون بفرمی تحت نظر هستن تا مداوا بشن سلام منم بهشون برس کنیم بابی بابیر بابی رسیه حضی! چی شده؟ چی شده؟ بگوی خالا از ازاله رد شده ولی استخابه نشکسته از چرا نمیزارم و بگیش؟ شما خودشون جان سلم آقای چه آقای؟ یکی بزر بخوز آقای دوتو، آقای چی شده؟ بچه آقای دوتو، آقای آقای دوتو میخواین عملش بارین، آقای دوتو بزن، خدا بیانی خوریزی بر نمیاد دکتر این دوباره سنکوب کرده اون که به اومده بود به هوش اومد خانم حسینی ازش پرسید چقدر پول دزدیدن تا یادش اومد دوباره دکتر میاد بیرون زن و بچه و سلیمانی دورش میکنه در همین حین مرد پرستوری با برانکارد حبیبو که بیهوشه میاره که وای با دکتر حسابت میکنه و دسته برانکارد از دست پرستور رهامشو میره و میخوره به پرستوری و پرستاری یهو حبیب به هوش میاد و بلند میشه ها های دوباره از اوش میره شب نمای بیرونی بیمارستان راه روی بیمارستان عزیز در حالی که سرون بهش وصلی با پایه سیران دوستکی و آروم به طرف اتاق حبیب میاد حبیب و اسماییل اونجا روی تخت خوابیدن عزیز به پای باند پیچی اسماییل دست میزنه اسماییل جا بیچاره میخوابه راحت حبیب حبیب جان حبیب ها ماشین حساب داری اینجا نه دلار تو بازار چنده حبیب جان آره ما حبیب جان چی میگی تو ا من سر به مغزی شدم 20 بار اومدی منو بیدار کردی ادا نکنه حبیب جون بگی بخواب استراحت کن من هم سکته قلبی کردم این کارا رو میکنم تو برو بخش قلب بگی بخواب اینجا چی کار میکنی از فکر و خیال پولا خوابم نمیبره خب نخواب، بذم من بخواب و کجا برم بخوابم بخواب بخواب بخواب چشمت هم میشوزه دکتر گفت زود خوب میشه این اسمایلم گفتن پاشا عمل کردیم خوب میشه منو بگو چه بدبختی دارم چه مکافاتی گرفت دارو شدم حسینی رو یادته به چاره دو میلیون کم آورده بودا چه بدبختی کشی بابا این تخت یه نفره است خب حبیب جون هتل نیستش که تختش دو نفره باشه بروسه سر جد بخواد دیگه کرد تا آخر عمرمونم کار کنیم این رو نمیتونیم جور کنیم هیچکس هم که دوزار من. تو قرض نمیده چجوری به خوابم من خواب ندارم مم. ای خدا عزیز تا اینو میگه خورناسش میره به هوا حبید زیر چشمی یه وری نگاش میکنه مم. نمای بیرونی باک و حالا اتاق رئیس آقایون خواهش میکنم آقایون خواهش میکنم این همه سر و جارجنجال نداره که از شما ها بعیده آی سلیمانی آی روفی آی درسنگی این اتفاق هر چند سال یه بار تو بانک میفته خونسردیتون رو حفظ کنی بفرمایی موضوع <تصفيق> اصلا این نیسا جوا ایشون احمال کرده قفلت کرده اسلحه شو سلیمان یه جوری صحبت میکنین انگار نه انگاره بیستی ساله داریم با هم کار میکنین چی شده یه دفعه اخلاق در من شده من پیگیریه تا تکلیف این اصله مشخص نشه من ول نمیکنم این اسلحه باید پیدا بشه. من از اولش هم گفتم این بابا به درد این کار نمیخوره. آقای شما رو قنداقشو دارین زیاد میکنید. شما مشکلات مسائل شخصی خود رو قاطی کارهای اداری میکنید. اصل پول که بیمه است، مأمورین هم دنبال ماجرا هستن که مسببین سرقت رو پیدا کنن. ما باید همسرت باشیم با هم همکاری کنیم نه که جنگ و دعوا داشته باشیم من مسئولیت دارم هاجی. این اسلحه باید پیدا بشه من اینا رو نمیدونم این مسئولیت نداره این همه مجبور پول میبرن و میارن مسئولیت نداره فقط شما مسئولیت داری اصلا به شما چه ربطی داره نخنده آی روفی نخند این بار دیگه پادگیره این اسلحه باید پیدا بشه اسلحه چیه آقا طولا رو مردن شما حرکت کردی به یه اسلحه آبروی حیثیت ما رفته من اصلا با شما هیچ حرفی ندارم پروانه رفته آگاهی باید این اسلحه پیدا بشه پیدا بشه. بشه نشه هر چی بشه بشه یا ما رو میخاید ببری شما چه نمیخواد قبول باشی آقا اسلحه رو ما شما با من جای کاری من آقا من خب تو من حبیب کشون کشون عزیزم میاره تو دستشویی جدی آواد کرد تو به دنیا اومدی دستشو باشه دستشویی ها بابا حبیب صورت عزیز رو با کدش خوش میکنه تو که دعوا ولد شر برای چی بپا میکنی من زبان اینا رو بلدم اینا یه عمر دنبال گاف اینا یه عمر دنبال دست دنبال, دنبال, دنبال, دنبال, دنبال گاف بودن از اصلا اصلای گم شده پیداش میکنم هفت سال پی یا یه فشنگ من از پشته میز کشیدن بیرون خودش رو شدن رئیس هفت سال پیش الان من میگن چی؟ حبیب بی خیار خیار من یه اصلها را پیدا میکنم اما اگه پیدا بکنم برای همشون خاطره میشه یا کاری بکنم حبیب جون خب اینا آره را اونجا میگفتی دادا اونجا میزدی اومدی اینجا التماس کنم التماس کنم نه یه زن یه زن بی همه چیز <تصفح> یه خدمت بود کرد تو یه سطراش کار یه زن حبیب اصابانی گردنبند تبیش از دور گردنش در و میندازی روی زمین نیروی انتظامی تصویر صورت زن تو کامپیوتر ممور پلیس آگاهی تصویر صورت زن تغییر میده کساره ها پیدا کنه این دماغش هم اونجوری که کم بود آ این این این این این, هم. این همین خوبه همین خوبه همین همین همین، این نبود که بابا فندقی بود این همونه دیگه نه اون اینجوری نبود که یه خورده سر بالا بود من زنر دیدم اسپری پاچه تو چی تو چی میگی اصلا یه خورده سر بالا بود اینجوری بود زاب سر رزبی عملاً قوری بود اصلا این صوابق داره چنتام داره ایتا بتي فروکسانا معروف به جولی کافی شاپه جولی کافی شاپ خارجیه. خود. این اکس رو پیشت به فسی خیلی ببخشید جناب سربان تکلیف ما چی میشه؟ میگیریمش چه نگرانی نه آخه میدونی حکم بازنشستگی ما در و این خانومت محترمه از نظر حراست و ما شما متهم نیستید قراره نشون میده که سرقت توسط عوامل خارج از بانک صورت گرفته پس شما میتونید به زندگیش چرا؟ من دو اسمش جولیه کافیشا ر اسمش جولی فامیلیش کافیشا خب ما کجا داریم میریم حالا میره پیداش کنیم آه. یعنی تو میگی ول بگردیم تو خیابونا دنبال این زن جورا من باید این زنه رو پیدا بکنم هفت تا شده ما از دور میبینیم که حبیب برای دختری تونس میکنه گویا با دختر سرگرم گفتگو میشن که ناگهان ماشین پلیس از کنارشون رد میشه ماشین پلیس در حرکت میگیره و جلوه نیست نیسته حبیب و عزیز تو زندانم پخشت جوان که کنارشون نشنستن و گل میگن و گل بشنون پسر جوانی که رشد سیبیل بلندی داره سر رو حبیب گذاشته و خوابیده خب سرش رو بر میگردون و تو ردیفی که نشستن عزیز بیچاره رو میبینه که کلالش یه پسر جوانه با موهای تاج فروسی بلند و بخشدد حبیب آجو آجو با تجم رفته به ملخ مهای پسر حبیب رعوفی عزیز در زنجی برد بردی یه بیرون اتواق نیروی انتظامی وای وای وای وای زن حبیب ناهید زن عزیز فره اون جان دوتایی با هم سلام علیکم به اینجا کنید شما آزادید شا. دختری رو که گرفتن با تعجب به اونا نگاه میکنه و میگه گه چطوری نه آزادم ولی ما رو نگر داشتی؟ آقایون بهشون بگی که داشت آدرس جولی خانمو از من می منو سوار کردین برین نشونتون بدم ناهید و فرح به هم یعنی بله نفهمیدم داشتی میرفتیم کافی شپ علماست ایرادی داره همون شب ما بی صدا از شیشه جلوی ون ناهید رو میبینیم که داره حبیب رو میکنه و براش خطانش نشون میکشن بفر عزیزو می زن حبیب میگه خدا درزمون نیبتی شده خودم هی بیخودی فکر خیال میکنه منیژه یادته؟ کدوم منیژه؟ همون که شوهرش سر پیری حواس باص شده بود. تو رو خدا اون که مرد خوبی بود. خب از خوبا باید ترسید دیگه. مرتی که شبا میگفته میرم اضافه کاری، نگو میرفته کسافت کاری و آشیاری و هر ای خاک تو سرش کن. ای خاک تو سرش کن. بمیره ایشالله با زن و بچه و زندگی رفته دنبال اینجور کارا من جاش بودم چشمش رو از کاته در می آوردم. درستش کرد منیژه بچه رو انداخت گلش رفت شوهر کرد نفقه مهریه، دادگاه پدرش رو در ورد اگه مملکت قانون داره آدم چه چیزا میبینه و میشنوه دوره آخر زمون شده دیگه آتیش کن بریم خبر مرگم یه جا بستنی من نکی خانم. شش. به من نگی خانوما بعدم میاد حسن برو چه میدونم اینجا که این زنه گفت چی چی بود اسمش کافی شب علماس دیر نی دیر چیه تازه سر شبه خیلی ببخشید. آخه بچه های ما خونه تنها ای شما نگرمه بچه ها بودی داشتی میرفته کافی شب آتیش کنین ساب مرده را, را بیا. رو میفتن و از پیچ کوچه میگذنن کافی شابه انماس خیلی شد چهار تایی دور میزی نشستن که وسطش یه اونه شم روشن ناهی با و فرح و, و خوشحالی بخش جای است تو ما ندیدیم ما آدم تو خونش نجسته است و فکر نمی کنی هم جاییم باشه عزیز میگم کاش بگه جولی خانو بیاد ببریم چه شکلیه دوباره گیر دادی که صد بار برات گفتم بابا ما دنبال سارق بودیم حبیب تو یه چیزی بگو دیگه چی بگم برد. خب حالا اطم اخ نکن اومدیم تفریم از خیرسترمون بسید بری سبش در میریم دیگه مرد جوان کچال اینکی رو نشونه یکی آفشو اشنانی چهار توشون بلند میشن و نگاه میکنن مردی کچل بلند میشن و به دختری که سر نیزش بود میرند حبیب این همون پسره نیست جلوی بانکتیره هوایی در میکرد حبیب و عزیز و زناشون مرد کچل و دختر رو که داخل دویست و شیش حسن تقیب ماشین مردی کچل بلنده والا اینا بیشتر بهشون میخوره بچه قیرتی باشن تا <تصفيق> خب حالا ما رو کجا داری میبریم بریم؟ حالو می بینن یه گردش اجباریه دیگه بده یادش میخی چابونیا میرفتم آبشار میشه خوش میگذشت. هر باقا عاق میکن یه دم بخونه سر می کهمشه ما با تو کارمون رو بکنین نخونی از داشه <متصفح> سلوی این سرکه از دقاله مغز سر گروه پرتقاله اون روز کشن دور پارفونی میکردن تو ساز ویزدی و منم نخوره بس کن دیگه ببینیم بای میشنه اواشو شده آره میزنه پسر او نه بابا زن که مرد نمیزنه حبی پسره میخواسته بگیرته زده زیرش کجا میدونه خانم دختری بی خودی داره ناز میکنه الان دوباره سوار میشه نه سوار میشه سوار نمیشه. حالا ببین میره دختره. آه دیدی رفت برای خانم بسر او ماشینو برکت رو ها؟ یارو دوزده، کلافرداره، قاچاخچیه بعد این گل میخره واسه دختره بعضی یاد بگیره. ها، ها من نخریدم چرا سر آزیتاک زایده بودم؟ میده، حالا خوبه حبی باقا همون یه بار خریده از اصلا گلد چیه خانوم گلدون یاس براد نخریدم نمتونه سیتک کنه شدید زیر چه کنی؟ کنید اومد اومد, اومد که کچن روبروی خونه خیلی شیکی نگه میداره با دست گل از پله ها بالا میره حبی پشتش میوسته اینجا گمونم خونه اون دختر است. آخرش اینه که همشون به غلط کردن دختری با منطوعی مشکه چرم بلند و رو قرمز میاد و گل آنس مرد کرچرم میگیر اه اه اه اه اه, اه. سره باز کسافت این درد جیگر بگیری هم با اونه هم با اینه خاک بر سرت کنن هرچی بره گل بگیره یک کرمیان داره دیگه خانم میخوای برم براتون گل بگیرم نه لازم نه نه لازم. میخوای برم بگیرم گفتم نه دنبال بهونه میگرده عزیز این همون جولی کافی نیست آره چرا قیافش عوض کرده ای میگفت این اینه خانم من اصلا ندیده بودمش حبیب گفت چیکارو؟ زبون بسته داری اینو بگو که حرفش ها تاست که کشان حرکت میکنه حبیب این نهیل و فره کنار دکه مجل کروشی پیاده میشه بیخیال اونجا رو نگاه میکنن اینگان بخون چیزی بخارن خانم نگه داری. من میخواه پیادشم بچه های من خونه تنان میخواه برا خانم نمیتونیم نگه داریم گوهشون میکنیم عزیز بگو نگه داره اگه رفاقتتون یه وقت به هم نمیخواد بگو نگه داره در میره خانم شما چرا گیر دادیم و سطح خی شما با شما چه من نمیان که همه چیز آقا من تاکسی بگیرم من از شهر خارج میشه حبیب می هم دنبالش حبیب درون رانندگی و عزیز که جلو نشستی خخت کرد. محدید میگم چه جووری میشه؟ این یارو پسره هم با اینه هم با اونه. <تصفيق> میگم یکی بیشتر شد دیگر چی شد شد؟ یعنی قیرت میرت یاختی دیگه میشه نکنه <تصفح> هوا من داشته نه به جونتا من این ها که میشه ها چه ستون بدنم میلرزه یاد این فرق میاختم هفت میزنه نسید میکنه درمیشو با میکنه زبان کوچیکش کشم تا میلرزه اصلا از پیچ جده میگذرن پاتشول قرمزه که موقعی سرقت بانک دیدیم اونجاست مرد کچن پشتش پارک میکنه حبیب دورتر مییسته. مرد کچال دختر پیاده میشن حبیب و عزیز از کنار پاترال قرمزه پسر جوونی رو میبینن که کنار ساختمون کهونه و درب و داغونی بقل آتیش ایستاده و نگهبانی میده حبیب این ماشین قرمزه نیستش که پسر از توش تیر هوایی میزد خودشه پیادشو حبیب و عزیز از کنار بشگه های بنزین میگذرن اینجا رو نزم بوره حبیب حبیب بگم بری به پلیس خبر بدیم میدیم بعدا بری... پشت بشگی پناه میگیرن و دوباره پسر جوان رو نگاه میکنن حبیب از دیوار خرابه بالا میره عزیزم به دنبالش اونجا یه شیرونی هست با کلی آتاش اینجا چه برای برای برای برای برو شوفره برو برو حبید اشاره میکنه که بریم اون طرف از روی شیرونی میکسرم به پنجره های کثیف و کسی به ساخته میرسن روی دیوار سوراخی پیدا میکنه و از توش پایین رو نگاه میکنه مرد کچل، دختر، دو نفر دیگه یکیشون مسلحه دوره میز نشستن هم اونجاست دارن با هم بحث میکنن دختر میره چه جوری اصلا من گیرفته دستش انگار دست بیل گرفته اس پولا کو عزیز از روی شیربونی رد میشو دوباره سوراخی رو پیدا میکنه و از اونجا میبینه که دختر به طرف اتاقی میره دختر در چمدون پولا رو باز میکنه او توش پر از پوله اونجا چیکار میکنه؟ پولا؟ این پژه عزیز لیز میخوره و قلت زنان کنار پنجره خرابه میره خلابی از اون بالا میفت کنار پیسر جاوین که کنار آتش نگهبانه میده پیسر خراسون بلند میشه توی پایی چپ عزیزی عزیز یه گیر کرده بیشو بیشو بیشو بیشو بیا بیام. تو یکی مسلح دنبال حبیب میکنه و دیگری عزیز و با تفنگ نشونه میگیره. حبیب از در ساختمون میاد بیرون و عقب عقب به طرف ما میاد. مرد مسلح به دنبالش از پلههای ساختمون پایین میاد. معمور یگان ویژه جلوی دهن حبیب رو میگیره و کشون کشون میبره طرف درختا اوه اونجا کلی معمور و یه مشه پولیس هم هست مرد مسلح از ساختمون میاد بیار پولیس پلیسا رو میبینه و شلیک میکنه مرد مسلح میره تو ساختمون به مرد کچل و بقیه میگه که پلیسا اومدم اومدن همه یه طرفی فرار میکنن دختر از ساختمون میاد بیرون و به ماشین پلیس شلیک میکنه و فرار میکنه مامو که یه گاندیجه حبیبو میکش و میبره داخل ماشین مرد کچر چمیدون پولا دستشه با عزیز که پشت سرشه و با یه مرد مسلح از در ساختمون میان بیرون ولی نمیتونن دوباره برمیگردن مرد کچر لگدی به بشگه میزن و شلیک میکنه در اثر شلیک پلیس بشكهٔ بنزین سوراخ میشه و شور شور بنزین میرزه روی زمین اونجا آتیش میگیره آتیش بر میشه و تمام ساختمون رو به آتیش میکشه حبیب که تو ماشین پلیس گیر کرده ناراحت سرشو میکوبه به شیشه ماشین مردی ماشی. صبح شده دستای مردی رو میبینیم که تکای پولو از روی زمین جمع میکنه عدهای در حال تجسس هستند حبیبم اونجاست سلیمانی با بی سیم حرف می زنه. مقدار کمی از پولا پیدا شده شدت انفجار به حدی بوده که متأسفانه چیز قابل تشخیص نیست سارقین هم به گفته معمولین تحقیق همه از بین رفتن متأسفانه در اثر انفجار همه چیز از بین رفته در درسنگی هم که در این محل بودن ایشون هم فعلا مفقود و لسن هست فقط یه دسته کلید ازش باقی مونده. بله آقای روفی هم حالی سیاد مناسب نیست دیجه، منگه، حالی سیاد نیست داخل ساختمان سخته میشه داغون و مایوس اونجا میشید روز جده حبیب مادم زده توبنش در حال رانندگی، که یهو کامیونی بغزنان به طرفش مید. که کمونده تصادف کنه حبیب ماشین رو کنترول و کنار جاده خاکی میسته کامیون رد میشه حبیب نفسی به راحتی میکشه که یهو عزیز رو روی پول میبینه دقت میکنه خودشه آره به طرفش میره عزیز با کتوش پاره و کسیف و روی سیاه که یه دسته شمیدون پولاس و پای دیگرش توی همون پیته گیر کرده به طرف ما برد حبیب دم پول نگه میداره و از ماشین پیاده میشه و میگه عزیز عزیز عزیز بابا عزیز عزین احذر عزین چرا هم چی میکنی؟ زنده تو چرا این شکلی شدی؟ قشنگ صحبت کن دیگه قشنگ حرف بزن دارم حرف میزنم دیگه ها؟ دارم حرف میزنم دیگه, می دیگه من که نفهمم چی میگی. منفجر شدم رفتم رو هوا افتادم رو درخت درخت حبیب با چرکوش و, و پیشگوشتی افتاده به جون پیت پای عزیز حبیب چرکوشش صدا نداره ببینی که اگه درد نومد بگو گواش گواش گواش بسید درد نومد بگو مگم می افتن با؟ اون هونه جیبایی می دسته درد نمی و این قچی الان قشنگ میبرم اینو دلوا پس نداره نه اول کیفو برداشتم بعد منفجر شدم مردشورا چی پول مردو ببره میگم منو کیفه سالم موندم می دمی میگم مردشورا چی پول ببره همین چیو منو کیده سالم موندم میگم هر چی موندم کردید مطبی دکتر گوش و حلق بینی آبادی دکتر گوش عزیزو مائیینه میکن ایشون گوششون طوری نیست. تو یکی دو ساعت دیگه خوب میشن. مشکلی نداره. با چدف دهنشو باز بسته کنه یا دماغشو بگیره باد بندازه توی هر همین کارو میکنن و عزیز با تعجب نگاهشون میکنه. حبیب! آقای دکتر چه این شکل ها رو در میاره؟ عزیز: آقای دکتر میگه دماغ تو بگیر، طوری اینشه. این مسخره بازی ها چیه؟ گوشش باز بشه باز, باز میشه فامیلی؟ من چاخ شده. دکتر چی گفت؟ عزیز و حبیب به طرف ماشین گره. سوار میشه میره دور میشه باز عزیز در ماشین رو باز میکنه و میبنده بلش کن بسته است اون بسته است بسته بسته قفلش خرابه. بگم ولش کن بده از قرم مکانیک درست کنه اون بهتر بلده بابا ولش کن وله اینم میشه حالا دیگه شب شده عزیز چمدون به بغل خوابه حبیب میزنه عزیز عزیزو اشاره میکنه که بلند شده سیدی عزیز بیدار میشه از ماشین پیاده میشه حبیب با تعجب نگاش می میکنه و به طرفش میره. انگار که داره به لالا حرف میزنه باشه. whats up؟ من و تو با هم نباید بریم تو خونه. چرا؟ چون بری تو شوکه میشن، شوکه. برای چی شوکه بشن؟ واسه اینکه تو مردی، مردی. این اداها چیه در میاری حبیب جان؟ قشنگ بگو چی شده؟ مگه تو صدای منو میشنیدی؟ خب بله، چرا نشنوا. قشنگ بگو ببینم. میگی من مردم؟ داخل خونه عزیز زنها و بچه هاج و وجه اصدادن و نگاشون میکنن فرح میگه همه مونده بود خبر مرگشو بیارن که آوردن این چه وضعیه واسه خودت درست کردی چقدر دستت بکشم مرد ای ای ای ای ببین بی خودی من چقدر جلو همسایه خودمو زدم چقدر خودمو زدم چقدر همسایه ها تسلیت گفتن اقدسو بگو جاب اقدسو چی بدم قشو زف کرد رفت خون یه برای این صورت رو بشو رو آقا برو ببینم با این سر و ریخ بری تو هموم نازنین من؟ خانم تو این خونه همه چی نازنین تر از منه؟ بده من اینو اینو خانم اینو ام. کجا میبری؟ حبیب آقا این خونه همجوری علکی مثل دسته گل نیست باید تمیزش کرد تمیز کنم بیارم فرح داره روی چمیدون رو ها. ها ام. ناهید پا شیزنگ نقدس بزن بی خودی نره اون همه خورما بخره چگونه با که پاک نمیشه پا شیزنگ درشو با کن پرون فرده با نه درشو باز نکن فلکون عزیز بی خودی اوقاتش ترخی بشه همجورو تمیز میکن او چه اخناقی داری تو هم مبینم تو پذیرایی با بچوها نشسته عزیز در همون رو باز میکنه و میگه آه. با چیه خاله خانوم یه دست لباس به من بده زیر و ها همش سوخته درم می‌پچه چنسی هم داره فرر کمن خارچی ازش خوبه بگم حبی یه دونه از اینا میرم پیش آپتیم آپرون نره ببرم به خودم خب همینو ورد که خوشت اومده نه بابا مگه ادارش خوبه پول ادارشون نیست که ادارشون فقط کیسه داره مال دزدا بوده فکر کنم واو اون هم که تلویزیون گفت نیست و نابود شده. چه بهتر که صاحبم نداره برش داد اونا بگن تو عقلت صدا کندن حسابی برو اون رو بر ببین چیکار می‌خوای بخوای کنی آره بابا خیلی خب کن اون تو رو ببین <تصحب> بس بیا بی خالش کن اون ساعت... اون ساعت... با هم چمدون رو می‌گیرن و اخیار اونارو خالی می‌کنن برم حبیب رو کانپ خوابه فر... فردیه کاش کرد نخوابی دیگه اون یکی تو همون نمرده باشه خوبه دوباره میرن تو مزخونه همون شب نمای بیرونی آپارتمان عزیز داخل آپارتمان عزیز حمام کرده خودش رو تو آینه میدونه حبیب رو کانپ خوابه حبیب جان حبیب حبیب جان میگم که که میریم بانک پولا رو پس بدیم حبید نگاه کنین چمدونی چه جنسی داره گمنم خارجی باشه پولاشگو پولاشگو کجا کو؟ چرا دست زدین؟ چرا درش ها بردین؟ به من کم نشده باشه چطونه شما ها؟ ناهی چمدونش رو میخواست به پولا خاره نداشتیم که دیو. حبیب جان یکیش کمه حبیب و عزیز به هم نگاه میکنن و بعدش با سوء زن به زناشون چرا اینجوری نگاه میکنی؟ میگم یکیش کمه ما دست نزدیم هرچی از همینجاست تو پولار شمرده بودی؟ پس میگم کار خودشون بوده آه، کار ما؟ نه،, نه دوزده حبیب جان دزدا که نیست و نابود شدن چجوری بریم پیداشون کنیم حالا؟ جایی دیگه نزاشتین؟ جیباتو بگرد؟ چرکاتو کجا گذاشتی؟ خانم، یه بسته انقدی بوده نه یه ست تومانی که تو جیبه بیچاره شدیم، رفت حبیب جان، من بدبرخ شدم ای خدا، ای خدا، ای خدا نگاه چه ننه من قلیبا بازی ها خانم <تصحنت> <تصحنت> <تصحنت> چهارصد سال هم از هم کم بکنن انقدر نمیشه چند ارقاست حقوقو میگیری اونم ندن خیالمون راحت بعد برسیدیم دم، سیشته میکنی بیچاره شدم، کجا پیدا میشه بفرما، پیدا شد، یا بگیر، پوچی، مردی انقدر ترس پول مردم بخوردی حالا گم میشد مثلا، چی میشد؟ خب حالا تلویزیون گفته پولا سختا، اصلا اینش کس نیست. چی؟ تلویزیون گفته پولا سوخته؟ عزیز به حبیب نگاه معناداری میکنه حبیب به پولا نگاه میکنه بعدش به زنش زنا به هم عزیز چشمشو گرد میکنه به حبیب نگاه میکنه حبیب دوباره به زنش نگاه میکنه و انگار چارتایی توی یه فکرن حبیب شیطون رو لنت میکنه بلند میشه می و در چمدون میبنده و میخواد بره حبیب دم در داره کفشوشو میبوشه عزیز و فره و ناهید میان به طرف شام تشریف داشته باشین حبیب حبیب چمیدونو برد حبیب جان این چمیدونو کجا میبری؟ این ها پیش من باشه من خیالم راحتتره بدش به من نه پیش من باشه من خیالم راحتتره عزیز چمیدونو میبرید اگه نصف شبیه یه دوزی سارقی بیار نوگه اون بگیرازه؟ تو رزمی بلدی؟ من رزمی بلد نیستم فقط پینکوین بلدم ولی من تحویل دارم یه دونش کم بشه من بشه؟ امزال آدم کم بشه؟ منظورم این نیستش که تو دست میزنی نه تو ما خواستی دست بعد از یا اون خدمت بیام دست بزنم بگیم نه گفتم چون من تحویل دارم باید پیش من باشه حالا همین نخواونم بعد پیش من باشه. میگیره. ممشن. هر دو دستی می میگیرن و این میکشه و اون میکشه. حبیب و عزیز کشون کشون درو باز میکنن و میرن. در باز مونده. زن و حاجو واجو دوباره برمیگردن. میافتن روی چمدون. بازم این میکشه اون میکشه. آخ سکانس من من عزیز و حبیب در حالی من من که چمدون تو دستشونه من من به هم میگه تو یه چیزی میخوای به من بگی خجالت بکشین مثلا شما رفیقی من رفیق این نیستم من رفیق این نیستم از یوم خدمت میخوا بگی من به اینا دست میزنه فکر اینا برای من مهمه تو خیال میکنی برای من مهمه برای من مهمه نه نه خیر برای من بسته مهمه. دیگه دعوا چرا می‌کنین دعوا نکنین من میگم ناهجونفوله رو نصف کنین نصف پیش ما نصف پیش ما ها. ناهید در چمدون پولا رو روی میز نهار خالی باز کرد و با وله نگاش میکنه پسر هفت سالش کنارش نشسته حبیب از در میاد تو کنار دختر شموزده ایده سالش رو که اون کنار استوده و مادر رو نگاه میکنه میست اون میگه برو یه قلم کاغذ بردار بیارم خواب حساب کتاب کنم دست ازده بچه بیا برو بگی بخواب بیا برا تو با چی باز کردی. بچه ها میرن اصاب بصاب روی دارم برا درم به من چیکاره اصاب دارن؟ مگه نگفتم اون قلم کاغذ وردار بیار ببین ناهید ناهید بی بیناهید ببین دلار چنده چی شی دلار چنده؟ این پول ها صبح تو بانک باشه از صبح اپارتمانه دم خنابجی تو دارن پیش فروش میکنه میگم میکن این پول صبح باید تو بانک باشه من این پول هاش کاری ندارم چندونشو میخوام بابا چرا میشونی پس؟ حبیب بابا اینا دلان... چندین؟ این باید سوتو چکش باشه به شونه چن بیا. بذارش رو اینو. از روی میز میافته از اون طرفم متکای پولا از روی میز کالاپی افتاد. خانم به متکای من چی کار داری؟ دست نزن. من اینا رو برداشتم که شما بهش دست نزنید. عزیز آقا، عزیز آقا یه چیزی بخوام میشه لطفا نعناگی؟ راجب پول نباشه ها. عزیز آقا میگم مگه همه نمیگن شما مردی خدایی نکرده زبونم لال زبونم لال بفرمای میگم کسی که از مرده پول نمیخواد میخواد خب منظور منظوری که ندارم میگم شما که منو دوست دارین مگه نه البته <Luxus> مگه صبح شما مدرسه ندارین بریم به دیگه دختر هفش ساله و پسر شمزده هیده سالشون از لای در نگاشون میکنن صبح زود حبیب کنار کاناپه روی زمین پسرش روی کاناپه خوابه زنگ ساعت رومیزی حبیب بیدار میشه و زنگ و قطع میکنه و بی اونو زیر میز پرت میکنه روی پسرش رو میکشه لایه در اتاق خواب و باز میکنه زن و دخترش روی تخت خوابه ناهید انگار چند روی تخت کنارش گذاشته روش رو با پتو کشیده و دستش رو روش گذاشته حبیب خوب دقت میکنه و به طرفش میره بله چمدونه آروم چمه از زیر پتون میکشه حبیب با ماشینش به طرف خونه عزیز میره نگه بیده از داخل خونه صدای دعوی عزیز و فراهو میشنوه عزیز متقب به دست و از در خونه میاد بیرون خودتی حبیب روشن کن بری عزیز که شرگار راحتی پاش بود داره شرگار بیرونش رو داخل ماشین بیفوش ریخ ده خیلی درست که خیلی ببخشیده در عمرم انقدر توهین و تحقیر نشینده بودم من نمیدونم اصلا خدا این فره رو برای چی آفریده تو هم به من بخند اونا که میگن بمیر تو هم به من بخند. با و حالا روز خودم میخندم ای بابا به بانکی برکزی آمان. میرسن راه باز میشه حبیب به دو برده. مامور سلام میده رد میشن پار, آمان. آمان. پار کردن اون متعکار نبری خزانه بابا اونها رو حبیب کمیدون رو میده به عزیز و اون میره. حبیب سعی میکنه در ماشینو قفل کنه. راحت با این رفتاری که خراب شدی. دیگه. در کمیدونو میبند و هارسان به حبیب میگه: حبیب چه؟ خیلی آدم ناجوری هستی. میخاست یابروی منو ببری؟ چی شده؟ چرا با من؟ ما که من رفیقت نبودم. چونو موزخ رفیگ میگم چی شده چی شده؟ بیا ببین چی از این چامدون از روی کاپوت ماشین سر میده طرف حرف حل... توش پر از نباسی که زنونه تا کرده است این تا صبح زیر دستش بود آره من خرم بیه. به جون خودم به جون خودت این ناییچ با ماشین به طرف خونه حبیب میره. حبیب و عصبانیت در رو باز میکنه و میگه ناهید. عزیز متقابه دست به دنبالش ناهید ناهید ناهید فاضه فهمیدم چقدر بر این خاک بر سر من کنه خاک پولا کجاست تو کمده مول شور هر چی پوله ببره نایلون پولا رو میده. من چشمم دنبال اون چمدون بود یواشکی ورش داشتی بردی که چی بشه ازت ویلا خواسته بودم ماشی خواسته بودم خونه دوبلکس خواسته بودم گفتم که ولات یه دونه چمدون میگیرم ایشوره میکنه که عزیزم باهاش سلام علیکم سلام علیکم احوال شما من همینو میخواستم خطوبتای برمی‌دونم شرام بکنه خیلی خوب بیا بفرمایید ببین اولی راکی خدا که روزی که از خندش گرفته به طرفشون میره حبیب در آتاقا میبنده عزیز میشینه متکر رو کنار چمدون میزنه تو چمدون از پیدا میکنه و به خودش میزنه ای ای ای, ای از روزنامه است چاش حبيب پولار بغل گرفته و ودو و جیغ سنه با طرف میاد عزیزو حبیب هم می‌دام بایدشون چی بگم به مردم؟ بگم زنم دوست شده؟ بگم دیوونه شده؟ چه دوستی؟ یو، حبی صاحب نداره؟ نمیدم، من از اون پول بده دست تو دیوونه‌ی که می‌خوایی پولای بی صاحبو ببری پس بدی؟ این پول صاحب داره مال مردمه، مال بانکه اصلا، الان میرم طلاقش می‌دم اصلا برسه، برسه، برسه، برس یه دیگه چرا کتبیم چرا؟ اینا که صاحب نداره تو هم که مردی چقدر حسات زندگی دیگرانو بخورم بعد ما خونه توی شمال بخریم شانس مده در خونمانی نمیذارم ما استفاده کنه آخرش من میمیرم یه سفر اروپا نرفتم چقدر من پدبختم چقدر فره و ناهید گریه میکنن. حبیب عزیز تو ماشینه حبیب و عزیز کنار ماشین حرف می زنن. عزیز خودشو با پول باد میزنه حبیب دسته پول از عزیز می گیره. عزیز ها میگم چی میخوای بگی چه چه؟ خب بگو دیگه اگه چیزی میخوای بگی بگو میگم اه... نه اولش من چیزی نمیخواستم بگم حبیب جون داریم میرسیم بانک بگو هر چی میخوای بگی میگم آدمات چرا چه اینقدر ضعیف این پول چی آخه چرک کف دست اصلا به چه درد میخوره فوق شدم یه خونه بزرگ میخره دوبلکس یه مغازه دونب یه ماشین آخرین مدل. حالا این چندرگاز اصلا چی هست که چندرگاز چیه رقم کمی هم نیست مگه تو شمردی نه زمان... ن... نه ناهید میشموره بابا من که ش تا خیال میکنی برای من ارزش داره چیه اینا شرک کف دست شرک کف دست البته خوب راست میگی. کم کمم نی. میگم اینا امروز خوشگل شده اینها چاپ خوبه چاپ میکنم تندتون اینا رو چاپ خوبه. حبیب عزیزو که چمدون پول تو دستشه به طرف بانک هول میده به بانک میرسن حبیب میره حبیب داخل بانک میشه برو برو به بر بده حبیب آه میخوای تو هم بیای قبولت دارم ایسی سلام علیکم تسریت میگم قم بانک بود حبیب خندش گرفته میسته فکری به نظرش میرسه پر و بدون میره به خزانه رسیده حبیب از اونجا میاد بیرون کنار ماشینو میگرده خبری نیست دی عزیز من اینجا خوبی به خدا من وقتی شنیدم جگرم آتیش کرد خیلی ماهو بود چی میگم میگم عزیز اومد اینجا یا نه بیا مرزاش میدونم خیلی سخت میدونم برادر مرده رو فقط برادر مرده میفهم. باد کشیده باشی دردش از نمای بالا ساختمان بزرگ بانک مرکزی رو میبینیم و صدای حبیب رو که میپیچه از عزیز عزیز گفتن حبیب در زمان گذشته به عزیز عزیز گفتن اون در زمان حال میرسیم و به چهره خانم دکتر که با قیز بر میگرده طرف عزیز عزیز که انگار همه چی رو میدونه مثلا خول خول پا میشه و دوباره میشینه عزیز عزیز عزیز گانش آقای منصوری میگه؟ پولا چی شد؟ آره آره پولا چی شد؟ به من بگو اون که اینجا نیست بله بعدش بعد یه هفته دنبالش میگشتن زنش خوشحال شده بود که شوارش غیرت دسته پولا رو بردسته رفته از گفتم خانم اگه رفت دیگه بر اگه رفت یه زنه دیگه گرفت چی؟ تا گفتم یه دیگه جاشو گفت رفته بود لب مرز زمان گذشته روز لب مرز عزیز چمیدون به دست کلاه مزقری سرش گذاشته داره پاچ نگهبانی رو میپاد میخواد پنهان بشه که یهو حبیب باشه به طرفش میاد و جلوی دهنش رو میگیره هر دو سرش رو میدازدن با احتیاط از اونجا میگذرن به جنگل میرسن حبیب عزیزو پرت میکنه و میگه می شدی کجا جا میخوای بریم نمیگی میزنن نفقت میکنن یه دنیا پلیس دنبالتن مگه شهر هرته از اینجا رد شدی اون طرف چی باید شمدون پول نمیگیم تیکت کت میکنن ای عزیز تو چقدر چه چقدر آره من خرم ولی من باید برم میزنن بزار بزنم کی بزنتت کی من باید بزنم من گفتن من بزنمت حبیب کلتشو در میاره بزن وردار بزن وگه نمیگن من بمیرم بهتره همه خوشبخت میشن یا ببه. من میخوام زندگی بکنم من نمیخوام بمیرم ناله نکن مثلا تو مردی یه هفته وقت داشتی بری چرا نرفتی نشد نشد بگو جرئتشو نداشتم حالا جرأتو بهت نشون میدم عزیز بلند میشه چمی گلم بعد میگه روم برو ولی با اینا نه اینا پوله مردمه دنبالم بخوای بیای میزنمت به جان عزیز میزنم به جان خودت میزنم زمان حال بگو بگو حرف بذار چهره برافروخته عزیزو میبینیم که نفس نفس زنان با قیز به حبیب نگاه میکنه تو برده حبیب حسرش رو تکون میده یعنی بگو بگو عزیز بلند میشه خانم دفتورا حبیبم بلند میشن عزیز میخوا رو باز کنه که بره منصولی دستش میگیره و نگهش میداره عزیز تقل میکنه که بره حرف زد حرف زد کار بزرگی رو انجام دادید سقوط سالها رو شکستید یه یک قدم عالی حبیب کنگا اصلا حالش خوب نیست قرسشو در میاره. دکتر، برقی از قرسشو برمیده رو نگاه میکنه و میگه ازتون من ماشه یه لیوان آب با من میده چه قرصیه خیلی قویه پلستار پلستار حبیب می لرزه رنگ پلی دل از روی صندوقه می مثل قشلی اونقدر می که از روش میره دستگاه اکسیژن روی تصویر حبیب بیهوش روی تخور ماسک اکسیژن داره سابقه بیماری دارید بستری بودی این, این چه خطیه ژاپنی یا چینی؟ خونده نه نه چیزی نگید فقط استراحت خوند دکتر تو ری بیمارستان به سمت منصوری میاد و میگه حالش چطوره؟ داری گریه میکنه خواهیم دکتور در آنها باز میکنه عزیز عزیز رو تختشون عزیز به طرف همام بینه درش آروم و باز میکنه عزیز میکاش میکنه عزیز بگم ببین می دونید چقدر خوشحالا که اولو سرف زدی دیدی دیدی بده سالهایت نفر هست که به فکرته دیدی تنها نیستی دونی چی فهمیدم؟ فهمیدم شما اون دوستان خیلی خوبی بودید درسته تو که همون یه حرف زدی حالش خیلی بد شد معلومه حرف تو براش خیلی مهم بود تشن نوش کرد آخه آسب حسابی داره بهش اکسیژن زدی عزیز تا اینو میشنوه بلند میشه دکتر خوشحال میشه و روحو براش باز میکنه میخوای ببینیش باشه فقط یه داره باید بگی خواهش میکنم نمیگی باشه من رفتم آهش. حبیب روی تخت از خوش رفته دکتور عزیز بالا سرشه عزیز حبیبو تکنید حبیب یه حوشش باز میکنه. باعث ام کنه نگفتم نگفته باید استراحت کنه حبیب حبیب حبیب جان حبیب جان به چیان خودم میزنم آن وایسا حبیب زمانی گذشت عزیز حبیب وقتی که داره باش همیدون پولا حبیب. به دو میره هدف میگیره بهش شلیک میکنه عزیز بله سر حبیب جرد. غلط شرده حبیب جان بلند شو بلند شو کلت کنم بگرمه برو کمک بر برو کمک بر حبیب <تصفح> <تصفح> <عبید>. <تصفح> عزیز حبیب عزیز حبیبو زخمی ول میکنه و میره زمانه حال بیمارستان عزیز بلو سر حبیبه عزیز با وحشت به فرار میذاره دکتر منصوری به دنبالش عزیز از پله ها میره بالا اونا هم به دنبالش حبیب لنگان لنگان میاد و میگه من نموزن. منم حبیب عزیز اون از پیله ها کنیم تو حبیب نیستی من حبیبم باور کن نه تو حبیب نیستی من زنده هم اگه زنده ای پس بیشرفی. از قیافت بدم میاد اجازه بدیم بیا توبت کن ویش کن بره از بدم میان از قیافت بدم میاد از اون چشات بدم میاد. چرا هر شب میای تا صبح تو خوابم از بدم میاد دوست دارم بیام خفت کنم عزیز فشار باید سنرون. باید سنرون. فشار بدی فشار بده من از شرعه زندگی نکمت خلاص کن فشار بده به دست کی ببینم بهتر از تو بردم به بسته تو برام ازدد فقط یادت باشه تو گفتی برم عزیز شهر بنده یادش میاد حبیب جان آه. حبیب دیگه؟ یه دقیقه وایس را گوش کن ببین من چی میگم چی گوش بده مزخرف مزخرف میگیری که میگی دیگه هوایی شدی خوشی زده سینه دل. بابا یه دقیقه وایس را ببین من چی میگم کار دارم اخیر بفرمای من میخوام هممون نجات پیدا ها. کنیم آره بابا نجات پیدا کنیم این شده ناچیه ما؟ اینبار برا حبی اینا پول مردمه؟ زمانی گذشته داخل اتنابی عزیز کل تو از روی سیینما حبیب که دراز کشیده بر میدار هوی بلند میشه او خب فردار بزن نمیزننی خودم میزنکس؟ در حالی که هر دو کلتو گرفتن با هم درگیر میشن لیوان و پارچ میافته حبیب عزیزو میکوبه به دیوار و با آرینجش هی به سینش ضربه میزنه بعد گلوشو میگیره و میگی عزیزو میخواستم بزنمت همون دم مرز زده بودمت من واسه پول نیومدم اینجا واسه خودت اومدم حبیب عزیزو روی دیوار سور میکره و خودشون زمین زمانی حال عزیز و حبیب نشسته به هم پشت کردن و حرف زمین چرا شدم؟ من برای هممون داشتم میرفتم خودم، تو، زنا، بچه ها، آینده چرا تو اول فکر کردم دوتایی بریم بعد گفتم زن و بچه ها چی میشن بعد فکر کردم تو بری گفتم اگه یه بلایی سرت بیاد من جواب خانوادت رو چی بدم بعد گفتم خودم میرم هرچی شد شد گفتم میرم اونجا همه چی رو رو میکنم همه چی درست میشه بعد همه رو خبر میکنم همه من با هم میری چرا؟ که شانس فقط یه بار در خونه یاد میشه. بسن حبیب من دفونم من خولم تو هیچ چید نیست تو منم بهتره برگشتی؟ ببینیشه یعنی دیگه نمیخوای بری کجا برم میتون من،, من تنها من بیشتر من بدبختم من بیشتر امنو کردم من بیشتر حوی حبیب خاندیگه زمان حال راهروی روی عزیز و حبیب همدیگر رو بغل کردن و میچرخند خاندتور بوله پله خوشحال لبخند لبخن و سرشو به راست و چپت کن میده روننده شخصی حبیب در اغمه ماشینو باز میکنه حبیب و عزیز شونه های همدیگر رو گرفتن و دارن میاند خوشحال شدم دیدم این جاییه که من هستم هی پرسی پولا چی شو من از پول بدم میان منم بدم میاد. چند دونری که نتونستم ببرم مون خلاحافظ حبیب دور میشه و میره و عزیز نشونی بدست دست هاج و واج مونده و خوب به آدرس نگاه میکنه راهروی روی بیمارستان داخل اتاق عزیز یهوری روی تخت نشسته و دستش رو روی هم گذاشته و سرشو پایین انداخته سرشو بلند میکنه فکری به خاطرش رسیده بلند میشه پرده رو کنار میزنه و جایی رو نگاه میکنه راهروی بیمارستان پرستار جوانی دوان دوان به طرف استیشن پرستاری میاد گوشی رو برمی‌داره و شماره میگیره و میگه سلام مهربان هستم. عزیز در فرار کرده. روز پیچه جدی. حبیب در حال رانندگی و عزیز کنارش نشسته. بابا من همین سالا یادت بودم. باور کن اینا ها اینو نگه داشتم وسط. این کلید خودمه. حبیب پولا کجاست؟ بریم میریم برعش داریم دیگه. من میدونم پولی در کار نیست نه برش دارم به جون آزی راستی آزی چطوره ناهید خانوم بقیه ای بابا چی بگم من زن بچه تو ولد نکردم مال مام یه جور دیگه میدونم حبیل رفتی پولا رو خوردی نوش جونه ولی به من راستشو بگو. با به جون خودم به جون تو به جون هرکی قبول داری نتونستم ببرم گیر کرده بودم اونجا بین دوتا مرز سرباز اون طرفیام هم داشتم میامدن طرفم هم. همه اومد یه چمدون دون بدم دست اونا کردمش یه جایی عزیز و حبیب پای پیاده نزدیک لب مرز دارن میرن تو دشت سبزی کنار تک درختی میشینن یعنی همه این سالا بی پول بودی بی پول بود بعد واه خب برمیگشتی نه شات که یه سال حبس بودن آشنه نخورده و سوخته سوخته میگشتم چی تا گفتی خوشبختی اون طرف نگفتی یعنی نیست اون طرفا فقط کاره هیچ فقط کار اینجا خوشبختی یعنی من و تو و به گوه بخند حبیب پس اون ماشینه با پوله و این لباشیکا و اینا اینها که سیناره کجا بردی خب کار کردم در ماشین رفتم کارم جرفت الان سی چل تا ماشین دارم همش ما... یعنی سی تا ماشین مال خودته؟ یه اونجا یه دونه خوشگله شد منم سوارسی نه ببین حبیب جان یعنی تو الان این کفر رو پیدا کنیم میدیش به من دیگه چون دیگه نمیخوای که من وصیت کردم نصف ثروتمو بدم به تو. نه ببین همون چمدونه ورسه دیگه. اخ من ماشین میخوام چیکار؟ همون چمدونت باز شده. نه ببین حبیب این چمدونه مال من اون 30 تا ماشین مال تو. بیا بیا بیا بشی. چرا نمیکشه دیگه؟ یادگاری تو؟ حبیب جون من که میخواستم بزنم کنارت خورد به تو خب میذاری به خودم که میذاری کنارم وقت حبیب ما چرا اون وقتا انقدر میخندیدیم؟ خوش بودین دیگه اما من حالا میخندم اینجا هم درد میگیره ولی میخندی. همین خدا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> لب مرز سربازی بلای برژه از پشت سیم عزیز و حبیب میبینیم که دولو دولو دوان دوان میرن زیر اون درخته اه بری اونجا که میزننه نه گفتن ساعت پنج یه دقیقه وقت دارم نگه وز عوض میشن چی گفته؟ گفتن میگه میگم حبیب آه. اگه چمدون اونه پولا پیدا بشه یه از اعظام منفه هم تموم میشه دره نبز میشه نرو حبیب بایشان بایشان حبیب حبیب میبینی که به طرف برج دیدبانی میره نرو باز من چمه دون نمیخوام تو رو تازه پیدا کردم دره. از اونجا دور میشه. حبیب به آب میزنه به سختی تو آب راه میره بالای برج رو میبینه بلای برج سرباز از پله ها پایین میاد حبیب از آب میگذره علفه رو کنار میزنه پشت بوته ها تخته ایرم کنار میزنه بالای برج رو پله ها دو سرباز در حال جابجا به جا حبیب تخت سنگی رو به زور میکنه و کنار میزنه یه سرباز بالای برج میره و اون یکی داره از پله ها پایین میاد عزیز هوای همه رو داره حبیب تکه چوبی رو کنار میندازه و چمدون رو پیدا میکنه و به سختی میکشه بیرون حبیب چمدون رو کشون کشون میاره حبیب بیا بیا حبیب در حال رانندگی و کنارش عزیز چند دون رو بغل کرده ماشین مشکوکی اونا رو تقییب میکنه حبیب جان آه میخوای درش کنیم ببینیم توش چه خبره دیدنش که ضرر نداره <تصفح> <تصفح> حبیب آه حبیب آه. آن دیگه میگم دلار تو بازار چنده؟ حبیب متوجه شده هر دو هرراسانن ماشین مشکوک از اونو جلو میزنه دو تا موتوری از طرفین اونها رو نگاه میکنن. اوه یه ماشین پلیس یکی دو تا سه تا از نمای بالا سه تا ماشین پلیس عقب؟ و یه ماشین شخصی که پشتش دوتون موتورین و به قول حبیب اونا رو اسکورت میکنن دارن نیر حبیب پلیس پای سرمونه میخوان اسکورتمون کنن تا بانش یعنی چی؟ اصلا با این شد گذاشته من بیام ایران مجسمه سنگی شیر کنار بانک مرکزی از این چمیدون به دست و حبیب از در چرخان بانک رد میشن و میاد میستن داخل سالن بزرگ بانک سمت چپ و سمت راست پر از نگهبان و کارکنان بانکی که ایستادن و منتظرند سر سالن روی میز بزرگی گل و شیرینی و لوح تقدیر گذاشتن عزیز و حبیب به هم نگاه میکنن و لبخند میزنند جمعیت براشون دست میزنند حبیب و عزیز سربلند و خوشحال تشکر به سمت میز میرن حبیب و عزیز با هم چمدون رو روی میز میزنن و با رئیس بانک آقای سلیمانی دست میدند حبیب و عزیز همدیگر را بغل میکنن و دست میدن و میرن عزیز به طرف میز میخواد برگردی که چیزی بگه ولی حبیب دستش رو میگیره و میبرتش جمعیت هم براشون دست می‌زنند عزیز دوباره میخواد برگردی که حبیب دستش رو میگیره غن عزیز و فرهیخته رادیو خسته نباشید شما فیلم رفیق بعد به کارگردانی عباس احمدی مطلق را شنیدید اجازه بدین همکارانم رو خدمتتون معرفی کنم جناب آقای علی حاجی نوروزی صدا بردار و جناب آقای فرشاد آزرنیا تدوین کننده و بنده پری تاهری که گویندگی و تنظیم این فیلم رو به اهده داشتم پیروز و سربلند باشین و خدایا رو نگهدارید